علیک من من بسم الله الرحمن اگه سوالی دارید بفرمایید دا دا هر بخوام خب بسم الله الرحمن الرحیم و این وابش باب استنافی است قبلش گفت بعضی ایمان میارن بعضی ایمان نمیارن و پروردگار تو به این کسانی که ایمان نمیارن مفسدین عالم است قطعاً به مؤمنینش هم عالم است هر کدام را صالح و تالح رو سر جای خودش قرار خواهد داد بعد میفرماید و ان کذبو فقلی و عملی ولکم عملو کم بنابراین این کذبوک اگر تو رو تکذیب کردند یعنی تو رو نسبت دادن به کس گفتن تو دروغ میگوی این کذبوکه فعل و فاعل و مفعول فقول جزای شرط بگو لی عملی ولکم عملو کن لی خبر مقدمه عملی مبتدای معخر مفید هسته کار من عمل من مال خودم فقط عمل شما مال خودتون شما اون ورخد ما این ورخد من تبلیغ خودم رو کردم مبحث رو گفتم پس اگر با تو تکذیب کردن تو را ها نباشه بگو شما کار خودتون رو بکنید منم کار خودم رو کنم آقابت هم رو خواهی فقل جزای شرطه لیعملی مقهول قوله فقل مقهول قوله پس گفتش که خودت رو به زحمت بگو نه انداز. و ما اکثر و ناسه. دیدید تو سور یوسف و ما اکثر و ولو ولو هرسته به مؤمنین این ها اهل ایمان نخواهند شد پس بنابراین تو وظیفه تبلیغه و ما علیکه اللل ولاغل مبید. پس بنابراین تبلیغ رو ترک کردی، بگو لی عملی، ولکم عملو کن درست شد که دلالت برحص میکنه انتم انتم مبتدار بری اونم ما اعملو و انا بری اون ما تعملون زیرا باز استیناف بیانیه زیرا انتم بری اون زیرا شما بیزارید مما اعملو درست شد؟ از کاری که من میکنم اعملو فعله مزاره ها؟ شما عمل مرا نمیپسندید عبادت خداوند یکتا عمل من است. شما براتون قابل قبول نیست مشرکی این ما ما مستریه باشد بهتره یعنی من ما عملو یعنی من عملی شما از عمل من که شما از عمل من که توحید است بیزارید و انا و من هم بریء من ما تعملون یعنی من شرک کنم من هم از اشراق شما بیزارم من ما تعملون زیرا اصلا بگو قابل جمع نیست این نیستش که ما بیاییم با هم دیگه توافق روی بگو یعنی شما فکر کنید که گوش کنید ببینید آیا چیزی در مورد شرک نازل خواهد شد یا؟ خیر اصلا اینطور نیست انتون بری اونم اما اعملو و انا بری اون مما تعملون مای مما تعملون و مما عملو مای مستریه باشد بهتر از این است که مایه بگید موصوله باشه. چون براعت نسبت به بگید انجام دادن چیز ولی براعت از شرک آه، نه براعت از بود درست اون هم هست ولی براعت از عمل بهتر است این انتون بری اون مستنفه بیانیست نسبت به اون فقلی عملی چرا برای من عملم برای شما عمل باقی میدید جرا ببینی گفته که بگو کار من به خودم رد داره به شما ربطی نداره کار شما هم به خودتون ربط داره این ازش بعد نمیان انگار پیغمبر یه حالت این رو که من کار خودم انجام میدم شما هم کار خودتون دلیل این که میگه که بهشون بگو شما کار خودتون رو بکنید من هم کار خودم ها دلیلش اینه که ما با هم بگی قابل جمع نیستیم انتم زیرا انتم بری اونم ما عملوا عنا برای امم ما این استیناف بیان نیست نسبت به اون فقلی عملی ولکم عملوا بله انتم برای عملت صفات مشبه است دیگه برای و منهم من یستمعون من الیک جالب و منهم من یستم من الیک منهم خبر مقدم من مبتدی مأخر درست؟ از این تیکه و منهم من یستم هم من اونا همیشه من من منهم من بعضیشون اینطوری هم بعضیشون بگید، جور دیگه دیگه من من قضا نه به و من هم من آه؟ یعنی لم یقز نه به آیه قبل رو ببینید من هم من منو بهی و من من لا یعمنو به، درسته؟ اینجا من هم من یستم اونه الک قبلش باید چی باشه؟ منهم من, من لایستم اون الیک آه؟ اده زیادی از اینها اصلا تو تطبیق تو که کردی گوش هم حاضر میگن نیستن بدن حاضر نیستن گوش کنم گرفتید یا نه میگه اینها اینهایی که بریگند از عمل تو که ما گفتیم لکم عملوکم تعداد زیادشون منهم من, من لایستم اون الیک و من هم من یستم اونه الک هم به تو گوش میکنن اینجوری نشستن تو مجلست گوش میکنن خب بعد به پیغمبر میگه به اینها هم بلخوش نباش افه انتا. اون اولی ها که لا یستم اونه الک خب معلومه اصلا اونا دیگه تکلیفشون بگو تمام این من هم من یستم اونه الک افه انتا تو آه، یعنی اینایی که به تو گوشم میکنن اینها بگید ایمان بیار نیستن فایده توشون نیست اینا هم لکم عمل و کم هستن عملشون تو سرشون بخوره چرا؟ چون افه انت تسمه اصمه جمع اصمه اصم یعنی کر میگه افه انت زیرا زیرا روشو زیرا انت تسم اسمن زیرا تو میتونی بشنوونی به کسانی که شنوایی ندارن میتونی حرف تو گوش کسی بکنی که شنوایی ندارد شدنیه یا نشدنیه نشدنیه آگرفتید افه انت تسم اسمن ولو کانو لای اقلون این خیلی بشنگیه ها ولو کانو این لوبش میگن لوبه چی چی؟ وصلیه که خبرش یه شرطی به طریق و اولاد چی شده؟ حذف شده مثلا این طوری میگیم کنید فرض کنید اکرم از زیفت احترام کن به میگمان اکرم از زیفت ولو کانه کافرن کی ولو کان کافرن یعنی چی <تصفيق> یعنی لو یکن یکون یکن کافرند کافرن ولو کان کافر کان کافرند کافرن. این شرط دیگه به تعلیل اولا بکید طرح شده لو یکن کافرند کافرن یعنی چی یعنی اگه کافر نباشه خب اگر کافر نباشه اگر کافر بگی نباشه یعنی چی یعنی احترام زیف رو بکن چون هم میدمان هم مومنه اگر کافر نباشه دو طابعه بود دلیل هست برای احترام شد و روکان کافرن اگر کافر هم باشه باز احترام کن چرا؟ چون باز یه دلیل وجود داره چیه؟ میدمان خب؟ فهمی دیدین لوی وصلیگر رو مثلا دو یه موایی قرآن که میگه و ما هکتر و ناسه ولو هر از طب مؤمنین یعنی چی؟ یعنی اگه تو حفظ نزنی خب اینه ایمان نمیارم در در اگه حفظم بزنی باز ایمان نمیارم گرفتیدین لوی وصلیگر رو وصلیه خب باق سار وصل میکنه دیگر فرعی مابلش رو به یه ما قبلش که زده شه چی کار میکنه وصل اینجا میگه تو نمیتونی به کسی که عصب شنوایی نداره حرف بشنبونی حرف تو مغزش بکنی ولو کانو لا یعقلون یعنی چی؟ اگر فهمم نداشته باشن عقلم نداشته باشن عقب مونده هم باشن یعنی اگر عقل داشته باشن ها؟ بگی. اگر عقل داشته باشن نمیتونی به فهمونی. اگر عقل نداشته باشن که دیگه به طریقه بگو، اولا نمیشه فهمون گرفتی چی شد یا نه یعنی یه ناشنوای هست حالا قبهه بگو شنوایی رو نداره ولی درک داره این باز نمیشه به چیزی رو شنوان حالا اگر در کنار این عقلم بگو نداشته باشه میشه به طریقه ولو لو این پس میشه زیرا پس این جمله چی میشه در واقع اینه نگاه کنید منهم من لا یستم اون الیک و مرهم یستم اون الیک بعضی از اینها بگو گوش اصلا تو مجلس تو نمیاد تن به گوش دادن نمیدن ولشون کن اینا رو اینا هیچ تو تبلیغ تو کرد بعضیشون هم که گوش میکنن فایدهی ندارند زیرا آیا تو قادری به کسی که قوه شنوایی ندارد این ظاهر لاله گوش داره اینا هم چیز تمثیل آقا ولی حقیقت نیست شنواندن اینا نیست این ظاهرش اینه که لشست داره به تو نگاه که گوش بوده اما قوه شنوایی بگید ندارد نمیشه چیزی تو گوشش کرد حالا اگر در کنار این که گوش ندارد شنوایی ندارد عقل نداشته باشد که دیگه میشه به طریق ولو کانو لا یعنی افن تا تسمه از از سم الفلام داره درست شد؟ یعنی ناشنوایان جمعه ولو کانو کانو باور میگرده به بی. جمعه. الفلام محصوله. مجرد شد؟ <تصفيق> یعنی الفلام عهد موصوله حتی معمولا میپذیرم در الفلام محصول رو تو این نوع موارد. نپذیرفتن هم مشکلی؟ خب. تا اینجا چی گفت؟ گفت بعضیشون به تو گوش میکنن در ظاهر. بعضی هم گوش نمیکنن. بعد اونهایی که گوش میکنن و نمیکنن فرقی با هم ندارن چون اینها ها چند. هیچ فرقی با هم دیگه بگو بله بله بله برمیگرد به سوم از سوم اینجا میدونید چی اتفاق افتاده؟ یه بار یادتونه من یه استعاره تمثیلیه برای شما گفتم یادتونه از نه آه گفتم که یه مجموعه به یه مجموعه تشبیح میشه بعد اون مجموعه دوم میاد جای مجموعه اول رو میگیره مثل که به یکی که تو کلاس بیاده که میگیم نمک خوردی و نمکتون رو بگید شکستی استعاره تمثیلیه که تشبیه تمثیلی اون اینجا همونه یعنی این که پیغمبر به این عرب های معاند هر چقدر زحمت میکشه اینها هیچ تمایلی نسبت به اسلام بگیر ندارن اینو داره میگه دیگه این همه عقلیه یعنی تو هر چقدر زحمت بکشی این معاندین دست از انادشون بر نمیدارن اینو تشبیه کرده به کسی که آمده است به تعدادی ناشنوا که از نظر عقلی هم بگید بهره کمی دارند و ناقصال اقلند، عقل و تعقل ندارن گفه درک ندارن اینها را آمده نشسته مخواه حرفی را به اینها بگیر بفهماند هر چقدر زحمت بکشه نمیشه اون هیت اول حذف شده به قرینه حالیه هیت دوم جاش نشسته چرا؟ چون اصلا بحث کرو به قول معروف آدم ناقصال عقل اینجا نیست شد یا نشد چی گفتم هستش؟ استاره تمثیلیه چون؟ افا انتر. و منو این افا انتر افا انتر چنو همزه چنون انکاریه انکار افتادیه یعنی همچی چیزی نیست. نفیه یعنی ما انت ما انت توسنوستان توسنوست دل مزاره آورده اینه هر چقدر هم زور بزنی نمیشه هر تو این کرد گرفتی چی شده نه گفتم حیعت پیامبر که زحمت بسیار میکشید تا امثال ابو جهل بیایند و بفهمند و شرک و رها کنند و به توحید برسند زحمت او هیچ تأثیری بگید نداشت تشبیه کرده به کسی که بگو افتیر از بگو ناشنوا اونها را که عدم عقل هم سراغشون هست اینها را بگید هی براشون حرف میزند و این حرف در گوش اونها پرو و من هم. و من هم من ینزور و الک این ومن هم من ینزور و الک یعنی چی؟ یعنی ومن هم من لا ینزور و الک. بعضی از اینا هستن به تو نگاه هم بگو نمیکنه هرچی تبلیغشون هم کردی سرشون انداخته پایین بگیر اما ومن هم من ینزور و الک. بعضی از این ها بگو اینطوری بر بر بر به تو نگاه میکنه میگه گول نگاه کردنشونو نخور. خود متفبست که میشه به جای یک و من هم من لا ینزورویعلک و من هم من... چه اونی که داره به دقت به تو نگاه میکنه چه اونی که به دقت به تو نگاه نمیکنه اینا دل ندارن اینها بگو باطن ندارن مثل عروسه کیه که داره چشمش بازه به تو نگاه میکنه فرقی نمیکنه اون الیک با اون لا الیک. حالا جالبه میدونید که قرآن این عوض کردن صبکاش چه ببین منهم من از من تمهونه از تمهونه با واو جنب الیک اینجا و منهم من, من ینز الیک اینجا مراعات اعص شد اونجا مراعات بگید معنا این سیاق بلا یکیه میگه این کفار یه تعدادشون خوب نشستن دارن گوش میکنن یه تعداد گوش نمیکنن جفتشون مثل همه این کفات که گفتیم بگم اون بره خط باشن تو این بره خط تو تبلیغ تو کردی یه اتشون بر بر به تو نگاه میکنن یه اتشون نگاه نمیکنن چه نگاه بکنن چه نگاه نکنن چه گوش کنن چه گوش نکنن فرقی بگو ندارد دلیل بر اینکه فرق ندارد اینه افه انتا مثل اون بالاییه باز استعاره تمثیلی همه تحدل امیه امیه جمع چیه؟ اعما یعنی نابینا افا انت ته دل آیا تو میتونی نابینا رو به راه راست بگیر هدایت کنی نشونش بدی ولو کانولا یبسرون ولو کانولا یبسرون اگر چه بگو نبینه یعنی ببینه آخه میدونی چرا این لا یبسرونش نه این که نبینه ها این منظور لا همون به غیبه بالاست یعنی بسیرت نداره می... گرفته چی میگم یعنی این لا یبسرون لا یبسرون نیست لا یعنی چی یعنی بسیرت نداره فاقد بسیرت این عقل نداره میگه آیا میشه یه جماعت نابینایی رو اینطوری راه بشنید و اینجوری برو اونور بر برو اونور بر برو اونور بر برو بعد الان این نابینایی بگی قدرت درک هم نداشته باشه دیگه کاملا میگه اینا اینم انگار به آنبر که داره به این کسانی که بهش نگاه میکنن داره به اینها زحمت بیش از حد میکشه که اینها به توحید بیان راه رو پیدا کنن پیامبر زحمت بیش ازت میکشه نتیجه هم؟ بگو ندارد تشبیه شده به چی؟ به کسی که جماعتی نابینا که عقل هم ندارند داره اینها رو مسیر بهشون نشون میده راه شده. شده محال است ممکن؟ زیرا افا تحدل عمر دل ام مزاره ولو کانو لا یبسرون ولو کانو یبسرون ولو کانو لا کودوم نه نه نه یه جمله اول و منهم عطف... گفتم عطف شده به جایی و منهمه بگید مقدر این هم عطف شده به جایی و منهم من لا ین زوره یعنی این جماعتی که ما گفتیم که اینها ایمان بیار نیستن لکم عمل لکم ایکم کم دو جورن یه دشون بگید خیلی بر, بر نگات میکنن خیلی میشنن دارن گوش میکنن بهش، چه گوش کنشون چه گوش نکنشون مثل همه یعنی میخواد پیغمبر ببین، انگار پیغمبر میشه از حد حریص بوده که اینا رو بگی به راه بیاره میخواد پیغمبر ببگی خودتو دیگه بگو فدای اینها نکن اینها یه تعدادشون بعد از ابلاغ تو و بعد از اتمام حجت اینها ایمان بیار نیستن حالا اینایی که ایمان بیار نیستن دو دستن تعداد زیادشون به نگاه میکنن گوش میکنن یه تعدادشون گوش میکنن در ظاهر نگاهتم میکنن اما اینها ایمان بیار نیستن مثل همون قبلیاشونن چرا چون اینها در کنار فقد بسر فقد وسیرتم دارند در کنار فقد عون فقد گوش فقد عقلم دارند فایده ندارد ولو کانولا برشت اون ی ببینید گوش ندارم اصلا توی قرآن سر مقدمه بر بثره ان س اول بسرل فقاات چون سهم دایره به قول معروف وسعت نفوزش بیشتر از بسره بسر الان ما میتونیم جلومونو ببینیم اما سم از پوشت بالا پایین از هر طرف این رو داره این در اون موارد هست اینجا بخوای این استنباط رو هم بکنی باز جا دارد اما این دیگه جمله است اینجا قصد و قرض روی این نخواد. ولی گنزورو رو مفرد آمد هستم اون جمع آمد این تنوع از یک التفات و یک توجه خاصی رو برای خواننده ایجاد میکن بله. بله یعنی قدرت نفوزش برای گیرنده ها یعنی سهم ببینید سمت خیلی دایره درکش بیش از بگید چشم چشم روز ممکنه با دیده من. اما شما موقع که داری از جلو نگاه میکنی دیگه پشتت رو نمیبینی راست و چپ و بالا و پایین رو بگید نمیبینی بله ممکنه ارزشش بیشتر باشه در اون دیدن ولی هیته عملیاتی گوش هیته عملیاتی گوش وسعتش بیشتر از هیته عملیاتی بگید چشم ولی ممکنه چشم مفیدتر از بگید بوش. بوش. حالا ما کنه بخواهیم بگیم این ممکنه ای که بگه چشم مفیدتر از گوشه چون بوش. کاری نداریم به این ولی هیته عملیاتی این بیشتر از اون اینالله اینالله لا یزلمون ناسشه ولیکن ناسم پسه هم یزلمون این هم نگه کامل میگه خدا اتمام حجرت میکنه بعد از اتمام حجرت گوشم هم میجیده. تو تکلیف خودت رو انجام دادی پیغمبر بقیه رو به خدا بسپر ان الله لا یظلم الناس خدا بگید به مخلوق خودش الناس ظلم بگید نمیکنه این شیئا یعنی ظلمن مفعول مطلقه یعنی ظلمن ما خدا یه سر سوزن هم ظلم نمیکنه این چرا چون ظلم قبیحه و از حکیم صادر نمیشه ظلم دلالت و نقص داره یعنی ظالم نیاز داره حالا یا نیاز مادی داره ظلم میکنه یا نیاز معنوی داره ظلم میکنه روحی داره خداون غنیه پس ان الله هلا یزنبون ناس شیئا میگه پس کی به این مردم ظلم کرد و اینها جهنمی شدن چی میگه؟ ولاکن نناسه انفوسه هم انناسه دوباره برای مرتبه دوم تکرار کرده اسم ظاهر نگفت ولکن نهم. هم آه؟ ولی این مردم این این همین مردم منباب تحقیلشون به خودشون دارن آه؟ یزلمون فعل مزاره آورده استمرار در طول حیاتشون گور خودشون رو میکنن این انفوسه مقدم شده هم مفید حصر هم فایده لفظی داره سجع آیه رو چکار کرده؟ درست کرده درست شد؟ پس این آیات چی گفت؟ این آیات پیامش چی بود؟ ها؟ این آیات پیامش این بود که پیغمبر تو وزیفت رو انجام دادی نسبت به این امت اینها یه تعدادشون ایمان میارن یه تعدادشون هم ایمان نمیارن مؤمنین اهل هدایتن دو اهل بهشت و بهش خوب اونهایی که غیر مؤمنن و به دست به تو با تبلیغ تو ایمان نمیارن تو تکلیف تو انجام دادی اینا رو دیگه رها کن قل یا ایها الکافرون ها دیگه اون آیم همینه میگه بگو شما عمره خدمت ما این برخد بعد به پیغمبر دلداری میده میگه تو زحمت زیاد میکشی اینا مخلوق من هم. من میشناسم اینا رو چه اونایشون که دارن بر بر, بر نگاه میکنن چه اونایی که نگاه نمیکنن چه اونایی که زاد ظاهر شنوایی به خرج میدن چه اونایی که شنوایی به خرج نمیدن اینها اونایشون که اطماع موجت ایمان نمیارن نخواهند بود. چرا به دلیل اینکه اینها در کنار فقد و دارند فقد عقل دارن. در کنار فقد بسر فقد بسیرت دارن گویا نمیشه اینا رو یعنی میخواد بگه فیاضیت تو در شک نیست مبلغیت تو در شک نیست تو وظیفت انجام دادی قابلیت قابل وجود ندارد اینا مثل سنگ مثل چوب سنگ و چوب مگه قابل هدایت نه اینا قابل هدایت نیستن پس بنابراین خداوند اتمام حجتشو کرد به اینها عقل داده پیامبر باطنی محاکمهشونم میکنه حسابشونم میذاره کف دستشون پس خدا به اینها هیچ هیچگونه ظلمی نکرده نه در تبلیغ و اتمام حجت و نه در بگیر گوشمالی و عذاب کی به اینها ظلم کرده خودشان پیغمبر گویا پیامبر انگار نگران این هست که آیا تبلیغ رسالت خودش رو انجام داده است یا بگید استاره تمسیلیه خب ما لایزل ما رو گفتیم شیعن چی از, از, از ترکیبی؟ دو محبولی وضعی گرفتن که اون ما نمیریم معمولا طرفش چون میشه مجاز تر باب تزمین یعنی بگن لا یزلمون به منای لا ینقصص منو لا ینقصص دو محبولی بشه شیعن بشه محبول دو, محبول دو محبولای نمیگه معمولا همون یزلمون آخر ببینید اونو همینطور گرفتیم اینم هم بگید چون اینو نمیشه بگیم تضمین کنه معنای یمقصو و اون سرزا این دوتا مثل همه این شیعن به معنای ظلمنه خب و یوم پس اون آخرین آیه ان الله لا يَزْلِمُ النَّاس مفیده از را یعنی خدا به اینا ظلم نکرده فقط خدا بهشون ظلم نکرد و کی بهشون ظلم کرده خودشون ولکن اناسه انفوسه هم یست این و یوم یحشروه هم و هم که انلم یلبسوه الله ساعتا من نهاره یتعارفونه بینه قد خسر اللذینه کذبو به الله کذبو به لقا الله و ما کانو نگاه کنید آیاتی رو که براتون می من این آیه اگر برید بعضی از آیات رو احتمالات ادبی و ترکیبی توشون بعضی خیلی نواد هرجور که رسیدن ترکیب کردن ما معمولا اونی رو که بهترینه چون گفتیم که لا و تنزیل علی ضعیف ما تنزیل و قرآن رو که در اعلی درجه است از هر لحاظ با ضعیف بگید حملش نمی‌کنید این و یوم یحشرهم به نظر میاد که معنای عذ داشته باشه یعنی وابش با استینافیه باشه گفت خدا حساب اینها رو میرسه خودشون گور خودشونو کندن. بعد حالا میگه قذ یوم یحشرهم هم درست شد درست؟ بعضی آمدن به جای عذکر انذر گرفتن انذر یعنی انذر هم یوم یحشر هم آه. یعنی به ترسون رو از روزی که ما بگو مشهورشون کنیم ما عرض کردیم که عرض کردیم که اصلا این آیات برای دلداری پیغمبر است که این همه زحمت نکشه با عذکر بهتر در میاد تا این این پیامبر ما خودمون اینا رو اصادشونه میرسیم یاد بیار روزی رو که روز محشر بشه ما چه بکنیم با اینا ولی انذر باشد در واقع باز به پیامبر میگه تو بگو این کار تو انجام بده ادامه بده در طور که این کارو میکرد خداوند انقدر پیامبر حریص بود بر ایمان اینا که هی در مقابل پیامبر میگه تو وظیفتو انجام دادی دیگه خودت رو تلف نکن برای اینا اوزکر بهتر از انذره بعضی یه در ارقا فعل مقدره دیگه باید ببینیم اون فعل مقدر با سیاق آیات کدومش بهتر بگید سازگاری داره اوزکر یا ما یه یعنی چی یعنی پیغمبر به یاد بیاد روزی که اینها رو محشور کنیم بگیم پیامبر ما شما را بگو تبلیغ کرد اتمام موجت کرد شما چه کردید روزی که حساب کتاب اینها رو به گو خواهیم رسید رو به یاد آور یوم یحشورهم این لم یلبسو الا ساعتن من النهار این جمله حال است از اون ووم هم از اون جمله این کعن وقتی مخفف میشه کعن وقتی مخفف میشه زمیر شن یا بعضن زمیره بگیر مطابق یعنی زمیر عادی اسمش محظوفه خیلی از زمیر شن میگیرن میگن بوده که انهو لم یل و سو بعضی ها میگن که انهو ابنشان تو باب اول محنی میپذیره میگه اگه ما هم تو باب رابع هم میگه میگه اگه ما زمیر عادی بگیریم بهتر از زمیر شنه حالا در هر حال زمیر مقدر اسمش حالا که انهو یا که نه هم لم یلبسو الا ساعتا من النهار این جمله خبر کردن بعد که با اسم و خبرش میشه چی؟ بگید میشه حال برای همه لم یحشر هم. یا هم هم. ترجمه میشه چی؟ یاد آور پیامبر روزی را که خداوند اینها را بگید محشور کند روزی که خداوند اینها را بگید محشور کند در حالی که در حالی که گویا درنگ نکردند مگر لحظه ساعتی مدتی کم ساعتا. نگرست تقلیله مدتی قلیل من نهار از یک روز یعنی وقتی که محشورشون میکنی اینها احساس میکنن که بگو یه نصف روز یا کمتر از یک نصف روز فقط تو این دنیا بودن یعنی چی؟ یعنی وقتی با طول قیامت و طول عبدیت مقایسه میکنن میشه یا آن میگن خدا یا ما در آن دنیا بگید یک آن بیشتر نبودیم یا وقتی محشورشون میکنیم فکر میکنن که این همه مدت برزخ و دنیایی که بود یه لحظه بیشتر نشد رو به هم گذاشتیم شد بگید قیامت اقتر اول ناس حساب ها؟ یعنی چی؟ یعنی پیغمبر اینها چششون رو هم بذارن و باز کنن قیامته یه شروع هم که انلم یل و سوه الله ساعتن منن نهار منن نهار صفت ساعت انگار یه مدت کمی از روز رو یک روزی رو اونجا بودند یتعارفون بینهم. حال دوبمه حاله بگید دومه برای کی حال دومه برهم همه یه هم. روزی که محشورشون کنیم آه که لم یه الوسوی ساعتم من النهار در حالی که انگار یه نصف روز تو این دنیا بیدن یتعارفونه بینهم هم یعنی هم رو می یتعارفونه و اینه هم مثل که صبح این از در خونه میاد بیرون اونم از در خونه همسایه ها میان بیرون همدیگر بیگی میشنسد بیان بیرون یتعارفونه و اینه هم همدیگر میبینن بعضی هم میگن این حال حال مقارن است حال مغارنه کدوم بود؟ برای که استلاح تو ذهنتون لیمونه حال یکی با زمان عاملش زمانشون یکیه آه؟ زمانشون چیه یکیه مثل که میگیم جا از زاهکن جا از زاهکن یعنی چی؟ زید اومد در حالی که میخندید یعنی همون موقع که اومده بود همون موقع هم بگید نوت درصد حال ها اینطوری هست مقارنن یعنی مقارن از زمان حال با زمان آملش گرفتید ده درصد حال ها مقدرن مقدره یعنی زمانش بعد از زمان آمده زمانش بعد از زمان بگید آمده گرفته چی میگم یا نه زمانش بعد از زمان آمده ولی در اون زمانی که عامل اتفاق میفته بگید اون نیست ولی بعدش این حال اتفاق میفته الان آیه رو نگاه کنید یعنی لا تَدْخُلُن نَ الْمَسْجِدَ حَرَامًا إن شاء و مقصری انگاه خدا به این شاهد مثال کم میشه پیدا کنی که هم حال مقارنه توش باشه هم حال مقدره بعد حال مقارنه هم مقدم باشه علاوه عاملی حال مقارنه است چون همون زمانی که قسم میخوره خدا میگه موقعی که شما داخل مسجد الحرام بشید در امنی دیگه مثل این الان صلح جلوتون چرتون زمان دخول با زمان احساس امنیت بگید یکی همون است اما اون موقعی که داخل میشن سر نمیتراشند و تفسیر بگیر نمیکنن اعمال هر انجام نمیدم ماله بعده. این میشه حاله بگید مقدره درست شد میگه شما در امنیت و سرتراشان بعد تقصیر و, و تقصیر کنان مارده مسئله هم و سر تراشان رو تقصیر کنان بعده یعنی با کست حج اینو بگم ناوی نه یا مقدرین یعنی در حالی که در ذهنتون هست از تحریف و تفسیر ها شما وارد مسجدان حرام میشید با احساس هم میاد در حالی که تو ذهنتون هست که بگید تحریف و تفسیر هم بکنید اعمال حجم به جا بیارید یعنی این دون در درصد است در گرفتی حالا این یتعارفونه بعضی رو گفتن حاله بگید مقارنه است یعنی همون موقع که از گور میان بیرون هم رو بگید میشتاسن درست شد یه شروحون بعضی گفتن حاله بگید مقدره است یعنی اون لحظه که میان بیرون همه همی پراکنده که همه هم جرادون منتشر ها همی میام میام میان, میان جمع میشن توی اون صحرای محشن اونجا یومت رو بلستر میشه اونجا هم دیگر رو بگید میشه میشه حاله بگو مقدره نشد یا شد یه تا آرفونه بینمون بله زمانش بعد دیگه این قد خسره گوش به فرمایی قد خسره لذین کذبو بلقای الله و ما کانو محتدی این قد خسره بعضه گفتن استیناف بیانیه قد خسره گفتن استینافه چیه؟ بیانیس. یعنی چی؟ جید. یعنی روزی که مشهورشون کنیم احساس میکنن به یه چشم هم زدن تموم شد همه دنیا و برزخ و همدیگر رو هم تو اونجا که کی به قول ما رو چی گیرش اومده کی گیره چیزی گیرش؟ نه غنی و فقیر مشخص میشن همدیگر رو میبینن میشه یه عمر هستن درست؟ بعد میگه زیرا قد خسر اللذی نکذبو به دقای زیرا زرر کردن کسانی که بگو کذبو به الله به این لقا الله یعنی هشت به این قیامت تکذیب کردند و ما کانون مهتدین و اصلا راه راست رو پیدا نکردن مهتدی نبودند این و ما کانون محتدین حتف به جای این بشه جمله استینافه بگید بیانی زیرا اونجا سر پل خرابه معلوم میشه که کی به قول خودمون ضرر کرد قد خسرل لذیب کذابون ولی بعضی ها قائلن حال سومه حال سومه این قشنگه حال سومه اما معقول قوله معقول قول محذوف یعنی یوغالو لهم یا قائلین لهم یوغالو لهم یا قائلین نه بگید لهم حد خطره یعنی مخشونش رو میکنی در حالی که احساس رو کنم بگید چند لحظه بیشتر تو این دنیا نبود این در حالی که احساس میکنن چند لحظه میدونی چیه؟ یعنی نهایت از چرا؟ چون میگن این خاک به سرمون دیگه تا عبد باید بیچاره باشیم به خاطر چند لحظه که بگی. نمیارزه به اون چند لحظه که این همه به قول خودمون بد بختیم که بگو لم ید و سوی من انه هم, هم یه تعارفون رو بین میشناسن؟ آه؟ میبینن این؟ این گردن آقا رفونم بینمون باز یه چیز دیگه توشه آه؟ یعنی انگار طول مدت زیاد نبوده که هم دیگر رو بگو فراموش کنن انگار بگه دیروز بوده که با هم بودن الان هم دیگر رو دارم میبینن میشناسن. در حالی که بهشون هم میگن خاک برمون سرتون قد خسرن وزیم کفر آه؟ که از زبود الله زرر کردن اونهایی که این روز رو این اگر حال سوم باشه خیلی بگید قشنگتره یعنی عالم قیامت رو قشنگتر بگید تجسیم میکنه یعنی محشورشون کنیم یه حالشون اینه که احساس میکنن چیزی تو این دنیا نبودن حال دوم اینه که همدیگر رو میبینن و میشناسن حال سومم اینه که ملائکه به اینها میگن چی؟ قد خسر الازینه که از بله غای الله بله دیگه مقول قوله که با اون قولش میشه حال مثلا معقوله قول جای قولش نشسته شد شد نه و این زیاد ها تو قرآن که قول حذف شده معقولش آمده و با قول میشه خبر با قول میشه حال فراوان هست حصف ماده قول هیچ گونه معونتی نداره که بگید حصف خلاف اصله. ابن مالک میگه ولقوله از مرتوسه بید. قول رو خرینه بگید حصف بگید و به هدف هم. حتی انقدر حذف قول زیاده کسی مثل سرکاکی میگه تمام آیات قرآن همه اولشون قول داره. و محلم منصوب محور قولن. یعنی بسم الله الرحمان الرحم قول الحمد لله رب العالم. میگه یه جاهای بیانبر امانتدار بوده قولی که جبرهیر گفته گفته یه جاهای قول محضوبه نمیخوام بگم این مطلب های مخوام بگم این حسب ماده قول انقدر مرسومه که حتی به این کسرت کسی مثل سرکاکی بهش قائل نقد قد خسر این قانون موقع تحکیدش اینجا خیلی پشنگ معلوم میشه آه بهشون میگن به یقین زرر کرد زرر کردن کسانی که تکذیب کردن آیات الهی رو و هر کاری پیغمبر کرد هدایت نشدن و ما کانو محتدین ببین؟ اون بالا میگفت تقدیل اومی پیغمبر هر کار کرد هدایت بگید نشد زرر کرد خب تباک شد بعد من گفتم اگر ازکر بگیریم تقدیل بهتره یا انذره و گفتم گفتن چون داره به قول معروف به پیغمبر میگه خودت رو زیاد فدایی اینها نکن هی مانع میذاره جلوی پیغمبر که تو به پیغمبر خیلی زحمت میکشید خود این زحمت بیش از حد پیغمبر که نماز از اینا میگرفت تمام ثروت خدیجه هم تلف کرد تمام به قول معروف وقت خود رو برای هدایت اینها گذاشت و پیغمبر در نهایت عقل و درایت از این جماعت بود دلیلش هم با قول معروف کلامش یعنی این شأن پیامبر شخص پیامبر در نظر بگیری بجز اینکه معمور الهی باشد هیچ راه دیگری برای قبولش نیست این همه زحمت بکشه حالا می‌فرماید و اما و اما نورین نک بعض الذی تعذهم نعد ای اما این شرطی است و مای زایجه برای همین هم هستش که محکت شده به نون تحکید سریله داره باز به پیغمبر دلداری میده ها این توی سوره اسراء دیدی دونم دیدید یا اما بگه و اما یبلغن اندکل که برا احدوهما او کلاهما فلا تغلهما او و اما یبلغن نه این حمیده یا اما توارزن نه انهم ابتقاء رحمت مثل حمیده اما من نمیل بشره اهدا همینطوره یعنی این شدیه است بعد به مزاره بانون تحجید اما نوریه نکه یعنی چی؟ اینه میگه محتمه میگه احتمال داره بهت نشون بدیم به پیغمبر بعضاللزی نهده هم بعضاللزی نهده هم یعنی نعدهم او آهد سله منفهول دوم هست شد ترجمهش چی میشه؟ میگه به یقین با تحقیل احتمالاً بعضی بعضی یعنی پاره‌ای، جزی الازی از اون چیزی که وعده دادیم به اینها رو بهتون نشون بدیم گرفتی چی شد یا نه یعنی مگه ما مگه به اینها نگفتیم پوستشون رو میکنیم مگه نگفتیم عذابشون می‌کنیم؟ وعده دادیم بهشون دیگه گفتیم گوش نکنید ودخسر الازی اینه که از زبون الله و ما کانون محتدیم مگه نگفتیم مگه نگفتیم محشورشون میکنیم و بعد هم حسابی از خجالتشون در میانیم اینا رو گفتیم دیگه وعده آی ما اینه میگه بریغم بس شاید گوشه از این رو تو همین دنیا به تو بگو. نشون بدیم چرا میگه گوشه ایشو چون اصلا نمیشه همه اعضاب الهی رو که قرار قیامت بیاشه اصلا این دنیا ظرفیت کیفر یا پاداش رو نداره میگه یه زرش رو بدیم. مثل که به یزید نشون بدیم مثل که به صدام نشون داد مثل که به غذافی نشون داد میگه اما نورین نکه بعضاللزی مثل که به فرعون نشون داد ولی اما عذاب فرعون و عذاب این تغاد این تاغیه ها نیست این گوشه ایشه مثل به جای اینکه که آه یه ذری گوششونو پیچون داد اما نورین نکه بعضاللزی بگید نه ادو و مقبولیه بله این شرطی هست ما مایزاید میگیم دیگه میگیم اگر نشان بدهیم به تو بعضی از اون چیزهایی رو که وعده دادیم به اینها فروت شد جوابش افتاده جوابش افتاده جوابش چیه فضاکر مطلوب پس این به قول معروف چیزیه که هست فنه بل مفروب. خیلی خوب ها میگه بعضی ها رو یه به قول من رو پیچ بیدیم. این هم حقشونه دستمون هم درد نکنه. او نتوفیان نکرد. یا بعض دیگر رو ها این نتوفیان نکر اتوست به جای اون نوریان نکر یا تو از بین اینها ها میری ها در زمان تو اینها ها عذاب نمی بینن فنحنو نوری کهو فیل آخرن تو آخرت به نشونشون ما اینا ها نمی زنیم دیهرن این از دست در نمی رن بعضی رو یه گوشه از عذابشون تو همین دنیا به نشون می تو فتح نشون داد تو جنگ احزاب نشون داد و غیره بعضی دیگه هم اگر تو در بین اینها نبودی قیامت تو شاهد بر این ها هستی آه شاهدن و سراغ جنبانی را تو شاهده بر این هستی درست شده نه؟ اونجا بهت نشون میدی باز به دلداری میدی آه. یعنی به تو وزیفت انجام دادی این ناشکرها هم بگید ناشکری کردن ما هم قیامت هست یا من احشور هم قیامت است؟ حساب اینها رو بگو زودم میاد قیامت که علم یلبسو الا ساعتن بنن ها. درستو همه اینا رو انجام میدیم ولی تو همین دنیا هم پیغمبر بگو یه گوشه از عذاب اینها رو به تو نشون میدیم احتمالاً بقیه‌ش هم بماند در قیامت تو همه عذاب اینها رو خواهی دید پس چی شد یعنی بود این ان بدون مای زایده و نون تحکید بنویسید بنویسید نور کم نوری بوده دیگه مجروم که میشه میشه نور نور کم از لذی بعضل لذی نعد و همو نعد و همو نعد آید سله رو آوردم دیگه مفعول دوم بوده آید سله بوده هست شد نعد و همو فه دنیا دنیا منر عذاب ها میگه اون چیزهایی که تو این دنیا بهشون وعده دادیم از عذاب نشونت بدیم جزئی از اون رو آه؟ یه ذره ای از عذابشون رو منال عذاب منبیان میکنه اون نعد و هموه رو آوردن یعنی اون عذابی که به قال قراره, قراره به اینا برسه یه جز ایشو. یه سر سوزنشو تو این دنیا بهشون نشون میدیم مثل اون که به یزید نشون داد آه؟ یه جز بهشون؟ نشون بهشون جواب میشه فضاکل مطلوب آه؟ یا فنه عمل مطلوبه هازار خیلی خوب دممونم جان فضا مطلوب درست درستو پس پیغمبر بعضش و این نتوف بکند و ان نتوف بج بدونه نون تاکیدو ما آوردم و ان توفک فسوف فسوف نوریکه كهو فل فسوف فصوفا, فصوفا. نوري كهو فل اخره فعل اينا منظور فعل اينا نه بل جواب هست شده دیگه جواب هست شده گفت خب؟ چی و ان و ان نتوب فکر خوب و ان فکر چ گفتم بعد فسوفن نوری کبو نوری کبو چی اینو میگه به اون عذاب فسوفن نوری کبو بگید فل آخر و اینها بگو مرجوه همزی رو بردهشون چون ما در نمیرن به نمیتونن دررن ها نه هیچ ته از دست ما در رن. همشون قاهم گفت ولا تهیده مناس همشون اینو میدن حالا بعضی هاشون تو این دنیا برای تشبیه خاطر تو یه گوشه از عذابشون هم نشون بدین بعضی هاشون هم در آخرت تو شایدی. همه عذاب اینها را خواهی دید چون الینه ها بگو این نشان پیغمبر چقدر زحمت میکشیده درود شد خب و اما نوریان نکه ببین؟ محضوفاتش زیاد دار جواب شرط ها هست شده به غلینه آیات بالا فهمیده میشه که ما گوششون رو میگیریم و اما نوریان نکه و ازاللزی چرا بازه و ازاللزی؟ گفتم یه دوشه ای از عذابونشون میده آه، اون عذابی که یزید گرفت اون عذابی که سردام گرفت یه افصد شاید یک میلیونی هم عذاب مستحقیش بگید نباشه بعضی دیگه دیگر هم این عذاب رو بگو در ظاهر ندیدم مثل بعضی از طوقات که به قول خودمون سر سالم به زمین گذاشتن و مردن اینها روز قیامت حسابشون بگید سختره و می‌بینی که ما با اونها چه میکنم او نتوفیان نکر درست این ای فعلا اینا هم فهمیدید من چی گفتم نه؟ آه؟ چه اون قسم اول؟ مثل یزی چه قسم دوم؟ مثل بعضی از افرادی که سر سالم به زمین گذاشتند و رفتند مثل معاویه هر کدام از اینها هر شرایطی که باشد ما حساب کار رو خواهیم فعیل اینا مجروم. ثم الله شهيد على ما يفعلون ثم یعنی چی؟ آ یعنی اخرالعمل نهایت ثم الله شهيد نت بجای الینا مرد الینا مقدم شده مفیده است ها الله شهيد خدا شهید است علام یفعلون حالا این مصدریه است یا موصوله است هر دو میتونه باشه این خدا شهید است یعنی چی خدا شاهد است بر اعمال اینا این از شهید اراده بگید است اراده لازم کرده شاهده یعنی اقاب میکنه آقا شهادت خدا بگی میگیم خدا شاهد است روز قیامت منظور یعنی چی بگو عذاب یعنی عذاب میکنه یا پاداش میده دیگه فقط منظورمون شاهد عادی بگید نیست یعنی صمع اللهو شهيد و معاقب اون لازمه شهادت علاما يفعلون لا علاما يفعلون پس این میته نه نه نه نه نه این اصلا اینو بنویس اینو بنویسید بریم اینو اینو من می‌خواستم همین رو بگم یهن جای سوال برید سمه در اینجا سمه در این, این موضع مفید ترتیب با فاصله مفید ترتیب با فاصله نیست مفید ترتیب با فاصله نیست بلکه فقط ترتیبه در معنا را میرساند ترتیب در جملات خبریه ترتیب در جملات خبریه در معنا را میرساند گرفته چیزی میگم گوش کنید گوش کنید گوش کنید اوقات فا یا سمه خیلی ها میگن اینجا به معناه واقعه نه این اصلا به معناه همون پسه فا سمه به معناه سپسه اما سپس در مورد اخبار، در مورد جملات، مثلا میگه این کارو بکن سپس این کارم بکن، سپس این کارم بکن، سپس این کارم بکن. شد یا پس این کارو بکن این کارو بکن این کارو بکن پس این ممکنه توی چینش این کارها میخواد بگه این چند تا کار باید با هم بگی بشه. درست نمیفته. میگن ترتیب در اخبار یعنی یک. کار اول، کار دوم، کار سوم، کار چهارم اینطوری رو داره بیان می‌کنه. لذات اون وصیت 3 تا طاهرام هستش که ها سل علی به لی. فقسلنی به لی، فکفننی به لی. ها؟ فدفننی به لی. تعظیم نداره، فایه سم است. این منظور اینه که تمام تجهیزات من از تقصیل و تکبین و تدفین و نماز و بگید دفن همه ای اینها باید نر شب صورت بگیره اما پس و پیش هم آمده گرفتید این سمه برای ترتیب فل معناست. لا ترتیب فلمانه است گرچه نورد درصد سمه برای ترتیب فل وقوعه یعنی خدا میخواد بگه فقط میان پیش ما ما به حسابشون میرسیم درست شد؟ سپس ما هم به حساب بعد اینجا سمه برای بگو همون تراخیه یعنی میان پیش ما اول قیامت به حسابشون میرسیم آخر یه فاصله ای هست حالا چه بگیم فاصله رو درست کنیم که بشه طبقه اصل چه بگیم برای ترتیب اخباره ها اینجا سمه الان وجود دارد یا مخواد بگه هر دو کار از ما صورت میگیره یک که برای ترتیب در معنا جملات اخباری باشه یا نه اصلا واقعا ترتیب داره فعل اینا هم یعنی چی یعنی بازگشتشون پیش ماست آه گذر پوست به دباخونه میفته باید بیان بعد ثم الله شهید الله تکرار کرده اسم این التفات‌ها اول میگه اینا بعد میگه الله التفات به قایبه سپس الله شهیدن علاما سپس خدا شاهد است آنچه که اینا انجام میدن یعنی خدا عذابشون میکنه میان بعد از آگو رو میبینن و هم یعنی یه مدت طول میشه تا نامه اعمالشون رو بدن تو محشر معطل میشن و بینذره هر کدوم تفصیل مفسرین خیلی قائلن به این که ثم برای ترتیب در معناست بعضیا میگن نه ثم واقعا ترتیب در زمان داره اینجا درست شو بعضیا هم وا ولی واقعیت اینه که یا ترتیب در معنا رو باید بگیریم یا ترتیب در بگیریم لفظ یعنی خبر یعنی همون که عذاب بعد از رجوعه که این میشه طبق اصل سمم اما سمم بای اوقات برای ترتیب در معنا میاد اما سمم به معنای واقع معنا نداره بله چرا معنا نداره؟ مثال درمان نفرق میاد یعنی شما فکر میکنید که با قول خودمون آن میکشه؟ تایید میدونم یعنی شما فکر میکنید که مثلا کسی از قبر بیرون میاد و رجوع. خلاصه بعد این پیکر زنده شدیگه. از این رجوع زنده شدن تا زمانی که با دخول به جهنم پیدا میکنه هیچ چیزی وجود زمان قطعاً باید باشه. اما زمان این دنیایی نیست. چون این جهان به هم ریخته خب جهان دیگری باید باشه ماده دیگری باشه و با پیکر ما باشه آه؟ اگر پیکر باشد و جسم باشد زمان هم به دنبالش هست چون هر جسمی زمان و مکان رو چه بخواهید چه نخواهید و همراه خودش عالم تجرد که نیست که خب بزن خب حالا باز همون داستانه تسلایه به پیانبر میفرماید فرماید کل امتن رسولم ول کل امتن رسولم امتن یعنی سنت خدا بر اینه که رسول بفرسته ل کل امتن خبر مقدم رسولم مبتدا ما اخر تو رسول این امتی گرفتید یا نه زیرا برای هر امتی است. اتمام میکنه خدا هم اقاب یا ثباب ولی کل امتن رسول فعیزا جا رسول هم قضیه بین هم بلغست وقتی رسول بیاد اتمام اوجت میشه فعیزا یعنی محقق الگوه یعنی ست ها؟ درست شده نه متوجه میگه هر امتی رو ما رسولی میفرستیم اتما موجت میشه بنابراین ازا جا رسول ها پس هر وقت رسول اینها بیاد سراغشون درست شد قضیه بین هاون دیگه قضاوت میشه بین اونها به قسط به ادالت یعنی دیگه, دیگه بعد از اون اگر گوشه کسی رو گرفتیم بهش ظلم نشده دیگه اتمام موجت کردیم پیامبر باطنی بهشون عقل دادیم. پیامبر ظاهری هم براشون بگیرید فرستادیم. خب؟ پس دیگه چه چیزی هست؟ درست شد یا نشد؟ بینهم بالقسط درست شد؟ متعلق است به بلغست یعنی به عدالت. به عدل الهی بلغست یعنی به عدلهی قضیه علام یعنی رو یعنی زمین رو عباد توی قضیه میخوره به علام دیگه پایان میابد بین اینها قضاوت میشه بین اینها یعنی قضیه قضاون بین هم مطلب تموم میشه بین اینها بلغست و هم لا یزلمون نوابه حالی هست و حالا که اونها هیچ ظلمی هم بهشون بگی این حال است از اون یعنی پیغمبر عین عدالت اصلا ترس به دلت راه نده نسبت به اینها اینقدرم دنبالشون نرو ما رسولان زیادی رو فرستادیم برای امتها رسول که آمد اطمام میشه اتمام اوجت که شد خداوند بگید ثواب و عقابش رو به دنبالش خواهد فعضا جا رسول هم جا رسول هم فعل شرط عزاست قضیه بین هم بلقست بگید جزای شرطشی که ناصب عزاست و هم لا یزلمون هم بگو خانست از برای همه نکن برشون یعنی دیگه بینشون فعضا جا رسول هم بعضی ها این رو گفتم گوش کنید ما گفتیم که به پیغمبر خداوند گفتش که گوشه ای از عذاب این ها رو تو دنیا بد نشون میده هر کدوم هم گوشه رو بهشون نشون ندادیم بهت بعد از تو هم بود روز قیامت تو شاهد بعد این عذاب این ها بگید میگن این آیه اشاره به همون داره میگه لکل امتن رسول هر امتی رسولی داره تو هم رسول این امت فعضا جا رسول هم یعنی ازا جا رسول هم الموقفه موقف یعنی چی؟ قیامت وقتی رسول بیاید در قیامت دادگاه شروع میشه خب رسول با پرونده او یه ادهی میشن قبول با پرونده میزانه دیگه با پرونده او یه اده میشن رد. اونجا قضیه بین همون بلغست اونجا رسول میشه ترازو صالح و طالح با او بگیر سنجیده میشن و هم لایوز لما آن گرفتی چی شد یا یعنی نه با اون آیات خبر معنا کردیم ما. یعنی هر امتی رسولی دارد روز قیامت رسولشون حاضر میشه و اگر رسول حاضر شد بگو اعمال امت با واسطه او سنجیده میشه او شهادت میده کی مومن است کی مومن نیست آه پول سرات هم همینه این ولی و اون ولی مشخص میشن و هملا یزلمون به احدی ظلم نخواهد شد حساب همه رسیدگی خواهد شد مسلم الله آه.